اللهم الله الرحمن الحمد الله الله الله هست شد برای توضیح بیشتر مطلب و پیدا کردن زمینه های مبحث سلم در این زمینه ها خلابی این هم قدرده صحابه لحظه ها فوق روشن شد هم صرف تشکیف موضوع سلم هم و هم دیروشن شد اندار روشن میشه قدید مثلا یک از کاری تلیه که طبق بمیده مثلا کشتن رده که اینه هم به مسائل شد و هم به لحاظ هم به لحاظ موضوع یه مقداری گفتیم از عبارت ابن قدامه همبقی در این کتاب المغنیش اغنیش میخونید از صفحه 13 به بعد در جمعیده متعرض صحر شده این چاپی که من چاپ شاک درازده در جلدی است شاک باید هم داره که شاک هم داره. ایشون که نرمی میکنم خود ایشون این احمد محمد این احمد به کف بودن صحره. که سه کفر است مطلقه لیکن از خود امامشون نقل میکن از احمد که نه مثلا توقف داشته از سفر یا سابقا نهرس کردیم این منحصانت خیلی مشکل نداریم ممکنند امامشون این سیز نمکن برصور چیزی دیگه باید میشه بعدم اقوال دیگه رو کنیم مثلا نهرمی کرده برد که نیاد دلیل خودش رو علم ها دلیلیشون برد کسی خفره قول الله تعالی و تبع و ماتت و شیاطین ادامه کسی امام یه چون خوندین برس کر نداره و به همزه کتاب نحضم وقت در آیه رو در استدلاع به آیه رو رو کنیم دیگه توضیح از رای دیگه رفته راه میدونی که ما رفتیم یک از رایشون میگه میگه این شرحیمال مولکس و بودن در شایه اصابه بوده رفتی ایمان از رای یکیش حالا بیرادونی چیزه و معلوم نیست آیه ناظر باشه به مسئله حکم بیشتر ناظر به جمعه جنبه های ملاکی و معنوی این کاره و از این و تباره هم به یهود از یهودیان که در مدینه بودن امور رو منصوب می‌کردند کردن تکلو شیاطین علامور که سلیمان تلاوت های شیاطین و از خدا هایی می اما کفر سلیمان که من ارز کردم احتمال داره ما کفره راجع به همین بحث صحب باشه احتمال هم داره اصولا داده به تفکر دیگری که یهودی ها داشتن که حضرت سلیمان خادشاه بوده و پیغمبر نبوده و آخر آمر هم کافر کافی شده حتی بخانه ای رو برای بعض از زنهاش که بطفر اصولا درست و اما ولی که نشیاطین کفر او از ظاهر شواهد فراوانی که ما در اختیار داریم این است که شیاطین مثل جن نیستن که اختیار داشته باشن استعدادشون استعداد کفر این کفری که در شرفی نست کفر استعدادیست رفتی به ما نداره رفتی به استعداد ما نداره و اما و ما یا علمان من احضر حتی یه قول ما نحن و فتنه فلا تک یعنی اون دوملک اولا خود این آیه مبارکه داله برید نیست که اون مطلب اونا درست باشه چون اون یهود می بفتن. ما خوب دقت کنیم ما یک جمله عدیه و یک جمله تلسمات و اوراد رو می خونیم. این اورادی هست که بر دو فرشته در بابل ناظر شده حالا این واقعیت داشته اصلا همه چون فرشته بوده ظاهر قرآن ساکته نازره به این نیست یعنی کردیم این یهودی که در مدینه بودن دو تا مصدر علمی، دو تا مصدر برای این سحرشون وزنشون نقد میکردن یکی موسصدو شیاطین علامری که سلیمان می‌گفتن اینها مثلا فلسواکی بوده، بهدیه‌ای بوده، احسان بوده، عزائم بوده که شیاطین در ملک سلیمان می‌خوندن. خدا می‌فرماید و ما که سلیمان، سلیمان که چنین حرفی نبود. اصلا اون کفر پیشوا به سلیمان است. این درسته؟ و شیاطین هم که استعزادشون در مقابل خدا هستن دارا که نشیاطین بعد یا علمان اناسا سه معنیش این نیست روی اون کف زاتی که داشتن اون معنیش یه که اون سه کفر باشی بعد هم واجبه ما اون ذله خود دقیق میکنیم اینا میگفتن که این ادعیه که ما میکنیم این تلسماتی که ما میکنیم اون زل ما اون ذله ما اون ذله ماه اونزه نه حال مرکه رو بگن نه این حال ما اونزه در یعنی این یهود می گفتن این تلسمات رو خداوند متعال من سابقا توضیحات کافی عرض فرم دیگه تکرار بکنم. خدا مخواد توضیح بده که یهود دو منبع برای عزمشون زشت می کردن یکی شیطانی کنمار بسرد سلیمانی یکی رحمانی که میموستن خداوند به دو در باقید این حکوم شد و مارو و لذاق یه تعلمون برمیگده به یهود یهود یه از این دوتا یکی رحمانی و یکی شیطانی ما یکره بود پس اما بر این آیه مبارکی رفتی به اصطلاح کفر مستره ما نداری بعد ایشون معنی جده داخلی و قدروب رواه شامو ابن اوله ان عبیه از پر این زبه که پسر احمه رسول الله و معروفه و خیلی اینجور آن عرب بوده خیلی پقلاد هستیه میتونم رفت با پسر در زنگی جمل در مقابل هم میبونه برگرس رفت دیگه برحاله ترسط اون چهزن نانجی شهید شد زبه بیشاره به خیلی آدم سالمی هم نبوده اما خونه شده است اون پسری داره به اصطلاح به نام عربت ابن که وقت زغیر شوهر اسما دختر عبی بکره زغیر که قصر عمی رسول اللهه این در اینها که قصر عمی رسول الله است با جنار پیغمبر هم هست چون زنش اسما دختر او بکر اسما ده سال از آیشه بزرگتر بود عمره آخر اومش کور شد نید موسیقی پیل نه؟ م مختار راجب دو عبدالله دو نگاه نگرم عبدالله نزوه پسر حمین اصماه عبدالله پسر حمین اصماه و وقتی هم که در محاصله مقت واقع شد رفت با مادر خدا کرد. خیلی تحنه لطیفی در سال یک نور من تو مادره بشه تو در راه خدا میگنی چرا زره میشی چون شانه اصما وقت چشم نداشت کور بود، مادر همین عبداللہ ابن زبه وقت این خوهر آیشه میشه البته از مادرشون دوتان مادرشون یکی نیست پدرشون یکی وقت پسر زبه پسرهای زبه مصعب هست عبدالله هست عربه هست عربه علمو اهلت خوشی بوده مثل خودمو اینو اوره ندار زیادی از خالش آیشه نهاریم کنن در دو رحلت سبه هم زیاده این اوره این آیشه این عربه ابن زبه از خالش که آیشه باشه که از تمام خاله عبیه. عبه نیست. مادرش با مادر اسما مادر آیشه. ام نرومانه مادر یکی دیگه است. این نیست. با مادر که نیست. علایه حاله وقت از روات از عربه کسرشه. ایشام ابن عربه. ایشام ابن عربه. انا عبیه که عربه باشه. از خاله خودش. که آیشه باشه. ان نمره افن جاعت ها. این یک روایت عجیبیه خیلی عجیب غریبه واقعا اگر یاد که باشه شبیه این هم ما از سکونی داشتیم که یکی زنی اما پیش فیرنبر گوهند سه رو کردن فیرنبر و کدر سلبه رو تمام زمین و زمان رو دهند و قبول نیست رو کنند خیلی عجیبه اون روایت سکونی به این مرد نیست خیلی شبیه هینه و این هم نمیدونم چی جوری این آزیس عج این نمره ازن جاعت ها یه زنی آمد پیش آیشه ها جعلت هبتی شروع کرد گریه کردن در اینجا های شروع کرده با کار شدید ها یا سایت با قول و و قالت یا عموم المؤمنین این نعجوزن ذهبت بی الى حاروت و ماروت یه پیرزن من برد با اینجا با تهدیه است یه پیرزن من برد تا پیشه حاروت و ماروت خیلی عجیب هستن یا همین سه عجیب قدیب نیست میگن رایتی و مارود اجمالا در کتب ما هم هست اون در کتب احلیستانه خیلی دو نفر کی بودن چهار بودن خیلی صحبت های عجیب قدیب نیست فقلت و علمان اصطر این هم خیلی عجیب به مثلا زمان آیشه حالوت و مارود و کجور پیدا کرده میگه پیرزنه مثلا پیرزن از من صاحره بوده فقالا اتقه الله ولا تکوری اینه عبردن برای این که صحب کفر واقعا حدیث بگیر عجیل قریبی فا نکی علا رأس امریکی فا این من یاد الى تنور به دانستازن بولی بکن اونجا فرقال فرعیتو که اند فارسن مقرنه دیدم اید. از سواری که تلتاقا آهن به صدا خرد مقرنه به صورتش حتی خواهر غاب استما سهلی کرد و اون دیدین تو فرجعت و علیه ما به اون حالت و ماروز و اخواته ما فقال آزاره که ایمان منشی فذکرت باغل به سهلان قاله واللهی هم میره امم المؤمنی ما سمعت و شیعن غیب حاله همین مرداد حرف این حالت و ماروزی بوش کردیم ولی اصلا ابو عبدن فه من توبه میتونم من توبه بکنم احتمالا من چون ما رو توضیح میدم احتمالا این زمینه بوده برای تصور این که اصولا کسی که صحر انجام میده یا یاد میگیره این طورش قدیفته نمیشه حالا من این می کنم برد توضیحی هم برد ارز میکنم که این با فاصله بشه حالا آیشه و رعی تا تکیب و کار خیلی گریه میکنه حتا فرد که اصحاب رسول الله از اصحاب رسول الله سوال کرد حفظ کسی تو اینا و هم متوافرون وقتی بود که همون زیاد بودن به استدارش تساله که محله ها من توبه به قطع میکنیم فما افساها احدا از کم کلمه افسا در اون زمان به معنای جوابه در مسئله دادن بوده که در قرآن آمده یه از دستونه که فرکلاله قول الله یفتی کن کلمه پتواه در اصطلاح است. این لبنه عباس همه گفتن توبه تو قبول این نکته این بوده که بعضی ها قائل بودن که کسی که سه رنجاب میده دیگر اصلا کان آخره احلی برمده توبهش هم قبول نمیشه و باید کشن بشه اصلا اگر توبه هم بکنه توبهش هم ایش برداشته نمیشه در باب کافر یا مرتب اجمالا عقولی که اینجوریه حالا چون بعدا میخوام اشاره بکنم جو اجوارش ارزش مکن یه قول بیینه که توبه ظاهرا قبول میشه اما باطلا قبول نمیشه که این مشهور بین اصحاب ما هم هست ظاهرا بله نه ظاهرا قبول نمیشه باطن هم ارزش میشه یعنی نزد قبول میشه اما ظاهرا آجون نمیشه بذات عذر از او برداشته نمیشه باید باشه یک راه دیگه هم هست که توبه مطلقاً قبولی میشه این به نظر سنت خیلی معروفه ظاهرا و باطنا یک هم هست که خوردن قبول نشه نه ظاهرا نه باطن اینجا ظاهرش اینه که اصحاب مثلا همین بیان اصحاب اتفاق داشتن این بحثی توبه قبول نمیشه یعنی اینا زمینه هست برای اینکه می گفتن ساهر باید کشته بشه ولا یستتا تو هم قبول نهیم حتی اگر توبه بکنه فایده نداره و خوب دقت بکنیم ما در مقابل از روایاتی که خوندیم علیاتون باشه که بعضانشون باید بخونیم از روایتی که وعنمه ما نسبت داده شده از که مثلا سکونی هم حلیه هم. اونایی که وعنمه نسبت داده شده یه شخصی به نام حیسای فلان بوده میکنه. امام هم به اون میفرماز این کار رو که ظاهرش نیه که امام طوبش قبول میکنه دقیقه امید امام طوبش رو قبول میکنه ظاهرن و باطنه ظاهرش این طور تقال دفعه امکان احد من عبره که حیین عبره که حیین فبری به او بغر به پدر بکن و اکتری من عمل بر مستطعتی و تا جایی که میشین کار دقت به بکنه یعنی توبه در بحث واقعه واقع قبول میشه بین آبین و قول آیشه قد خالف کسی را من اصحابه آیشه که به اصطلاح مدبره شو مدبره نکش و قال علی رضی الله عنه از صاحر و کافر از امیر از چند در کتاب محرجه نهست از امیر و نعم نکرده بود اما اینجا در این کتاب نهفته میکنه. برها شواهدشون میذه. یکی از کسانی که بعد به خودشی آمده استونی امشیه، یکی از کسانی که ازشون نهفته در باب سیر قزل آمیور مامینه. اما اون ایکب بازیکن از همیشه نه امره و بعضی از دستگاهشون. بیا یحتمال اند مدرت برایش ها به سطح تنهام قصیل کف و توبت ها. بیا یحتمالی وارد که آیون خودشون مراجعه فصل و حد و صاحب که انشاءالله از خواهر کرد که الان الانم الانم, الانم مشروع بین از خواهر همینه ولی که ادهیم کردن ابو رومی داره که ان و عثمانه نحفان عثمان, عثمان تیزه دشته هم شده. و اومر عمر و حصه و جنوب ابن عبدالله این صحابه است جنوب که در بوده و قیص ابن و عمر ابن عبدالعبی اوال قرم دوم و هو قول ابي حمیفه و ماله ولم ير شافی یا علیه قرد به مجلد سه خودش و هو قول ابن منظر و از احمد احمد مراد امام صادقشون احمد دهلغار قد و بعد از که ام امه عایشه با قتل ها اما و النبی قال لا يحل مسلم به این همون استدلال شیخ طوسی است که اگر یاد مارکون باشه از کتاب خلاف شیخ طوسی خوندید ولنا اما ایشون می کنن ما بر این که باید کشته بشه ما را با جندوبه من عبدالله من النبی انهو آل حد ساله ضربتون به سیف با یه شمشی شو شو. به دریا زنده اون موت هرچی شد شد ابن هرد چون این رواد اشکال میکنه و ما می شوند این رواد ما هم داریم حد دو صاحب ضربتون به سیف ما هم داریم اینطور ساله عرض میکنن. ما یه اشکال کلی ثبوتی داریم در اینجا بکنید نه اشکال اثباتی ما میگیم بعضی از این چیزهایی که با عنوان حد الان ذکر میشه این اطلاع آنوزو کیفر حساب نمیشه روح کیفری نداره چون یکی از نکات مهم الان در قوانین کیفری محدود بودن و روشن بودن میشه. مثلا در باب مستجور حد لباس نمیشتن او از بالای بلندی بندازن از بالای خب کوها فرمو کنن درجه کوهایی در را زبان ما که نیستن این که من کهی از کوه تا مرد روی رو که کوه هم بود ساله هایی بود کوه ها در درجه تشف. این حد نیست از کوه انداختن یه کوهی شیرش زیاده یه کوهی نشیر مداخت یه کوهی مثلا چیزی مثل دیواره تا چه مقدار کوه خیلی یعنی مشکلی داره که حالا این هم یکی برایش بگم که این چیزا قانونا در اصطلاح علمی حد نمیگیره. بعدا با همون به اصطلاح جنابه لایث نوشتن خدا که دیوارش خراب بوده. خب این دیوارم فهم میکنه دیوار سیمانی باشه یا چی دیوارش سمسری باشه 2 باشه. موظف که اصولش حداقل بالاتر بلندی بلندیم تا مثل او کشته باشه و دیواری که پشتش شخصی خودتون نه خیلی روایت که یه هستم و نه حالت نه خیلی همچیزی ما نداریم بعد این از کجا در بیاریم حالا ممکن افراد مختلف باشن بعدم اصولا حالا بی... کوه رو میشه قبول کرد دیوار انسان بیاد یک دیوار درست بکنی تو رو خراب یهش بذار روش خواه بگن خیلی جمعای خواهدهایی فی نفسه مشکل داره این ضربتون به سه بزنه، تو شکمش بزنه، تو سرش بزنه، تو شانهش بزنه، تو کمرش بزنه. این یک مشکل قانونی داره. مثلا این ضربتون به سه مگر اینکه بگیم مراد به گردنش بزنه، یک ضربه گردنش بزنه، حالا وجوزا کرد گردن رو نکرد. حالا اینکه تو گردنش یک کمی مجروح بشه تا آخر عمر مثلا بعد اعصاب بشه، اینا به حکم حد نمیخوره. انصافاً اینا رو نمیشه به عنوان نه. نه. نه. نه. نظام داره که آش ماهاش مثلا یه زنده اون در مون. یا مثلا قرن مردی که زاده می‌فرشن زنده من. یا داره چه؟ قال ابن رواه ابن مسلم ما هم داریم. میاد اینه وارد. این اسماعیل بن مسلم تصادف روزگار قسمش با, با سکونی ما یکیه خود همین سکونی معروف هم اما این سکونی نیست اشتباه نشه خود اهلسانت هم سکونی رو دارن این سکونی خود ما هم خودش سنیه نهی به سکونی که ما داشت می‌کنیم، میکنیم اهلسانت هم داشت نهرم در از کتب شوایسته دیدن فکر می ابن ماجر باشه قزمینی باشه فکر می ابن ماجر یه حدیث ازیش داره از اونم اسمش اسمایل ابن مسلمه مثل این اسمایل ابن مسلم اما این اسمایل ابن مسلم مکیز که اهل بصره بوده ساکن مکه تده و خیلی این داره داره بین اونها، اون اسمایل ابن مسلمه که سخونی باشه کم داره و تا اونجایی که من دیدم به اتفاق از زادشون نه این داره آه یکیسی مخالف باشه یک نفر او رو توصیل نگرده این که رازم اینم مشروع مسلم ش و با زدیه کن و رواز سعید سعید منصور و ابو داوو فکر تایزو هم در جالب که قصه عمر رو می نویسه که عمر گفت اینا رو بخوشیم این که بله بعد به بکنید من از سلم که از مشکلاتی که در میان فقه هرستانت هست اینه بله و هازا اشتهر، مشهور شد از عمر که نوشته و مشهور شد فرم کرد کسی با عمر از صحابه اعتراض نکرد تشار صاحبه نکشی فکان اجماع هم من چند دفعه عرض کم ساده از من یکی از راهایی که صحابه سنیم اجماع صاحبه درسته اینجوریه که این مطلب با عمر گفته مشهور هم شده کسی رد نکرده چون رد نکرده بس اجماعه پس اجماع صاحبه ما در حقیقت به خاطر ترس از و هنگامی اونام بوشه اون مشکل نشه این حل مسئله نمیگه در واقع که نگاه این یک مشکل اساسی است من مخصوصا عباراتی می میخونم تا نقاط اشکال اساسی کار اونها روشن بشه وقتل از خصه جاریاتن بها سعر از راستیان رسیده هر صد مثل مرحوم پدرش دراز یک طرف وقتل جندگوب شهر صاهران کاری است هرینه یاد به ابن ابن اوغد این بله این مقداری محد کلامی که این قصه راست اما قصه نرمه از تاریخ شد وله انهو کافران فیخت هست فزیل خبرالدی رو که همین مسئله کفرمان شیعاتوین هم فصل و هر استفاق و صاحب آیا قدر با توبه یا بلا توبه پ روای ها اهلا ها ما و هوا ظاهر منقل عن بتوبه عن منهم في عن ان هم که بهطور بر نمیخواد به انه محولاً رو خلکن اهد نام نه استطاب به سااح وفل حیث الذي روایشان نقر هویانهایشهاند از اصحاب النبي في قلبه لا یازولو به تو بیه، من من خیلی وقت ممکنه وارد زیاد دریمو بکنیم بلی یک که این نقطه کی در آخروزن نکتهی لطیفیه خیلی لطیفه ولی آن نسره معنی فی قلبه یک معنای قلبی است، لا یازولو به تو من دقیق دقیق به نظر من اشاره ب یعنی میخواد بگه که اونی که حرام بوده خود خطمه کفر بوده اون چیزی نیست که قابل زباد باشه و لذا قابل توبه هم نیست یعنی چی چه زرافتی داره چون واقعا خود خطمه ممکن است یک حقیقی اصلا از مثل دور باشه مذهب دیگری باشه همه یک التفاظ ها و ذرافت هایی در کلام داره که خیلی جای توجهه این انتقاد در کلمات کلامات اصحاما نشده من اینجور میتونم عبادت فهم خودم رو از ما دیروز و پریوز هم از کردیم یک تعبیر داریم که تعلیم و سر حرام و یا کفر یک تعبیر داریم که خود سر حرامه. هم خود فهم بکنیم که انما این قائل نمیزم عبادت ذرافت خیلی بردیم این قائل بخواد این طور بگه اگر و سهر حرام باشه و کفر این دیگه توبه بر میداره اگر عمل و سهر حرام باشه و کفر توبه بر میداره پرگزم از کردیم صاحب شرایع میگه و تعلوم و سهر اونی که حرام قرار تعلم تعلوم و سهر و ارزم کردیم که مرحوم صاحب جواهی دیشون میکنه که تعلم حرمت نداره عمل سر حرامه پس معلوم شد خود این آقا تعلیم و تعلیم نوشته بود معنی شد که این پلمه ظرافت فکری داره متاسفانه تو گواهر از ما یه این ظرافت فکری اون ظرافت فکریش اینه اگر گفتیم تعلیم و سه کفران و حرامان این دیگه اصلا توبه نمیخواد چون تعلیم یه معنی قلبی ایسی قابل زواب نیسته اگر سهر یاد رو از چی تو خالی بود. <تصفيق> توبه کنه؟ به دستگاه دارم اگه من روزی خالی بکنه به دستگاه توبه معناه داره اما اگر گفتی این تعلام خیلی ذریفه این انصافه خیلی لطیف به کار اگر آمده این نه تعلام به نفس حرام نیست عمل سهر حرامه اون توبه معناه داره یعنی اگر مرادیشم این باشه من این فالا مراد من یکی رو درستگاه میخونن ولانه سهره معناه که قلبه لا یز اون رو به توب هیوشه و من لمیاتو من فکر می‌کنم مراد این آقا این بوده ما اون که گفتیم حرامه تعلم و سرعه تعلم در ظاهرش دیگه تعلم سر این معنا تو قلب آدم هست این از بین نمیره این عکس توبه می‌کنه بله اگر اومدیم گفتیم عمل عملو سر حرامه این توبه معنا داره خب دیگه توبه سر نمی‌کنه بگذرو کنه وقتی میشه این رو قرینه قرار بدیم خوب این نکته فنی اولا اینکه این مطلب درست بشه فی نفسه فرق زمینه اینکه حرمت عمل سر و حرمت تعلم سر خوب روشن شد اون نکته که یستصاب املا و ستاق اون اصل نیست چون تا حالا در کلمات علمای ما یستصاب املا و ستاق رو اینجوری گرفتن که آیا کافر تاب یا نه هر کی گفته کافر نیست تا، گفتن ساحر هم نیست تا. هر گفته کافر لا یفوسا را لز. حالا این جوری معنا یعنی بحث سهر رو خرع کفر گرفته. هم. آیا کافر توبه داره یا نداره؟ ساحر مثل کافر روشنش. این تو حال بحثه علما ما این جوریه. تو علما ما و تو علما یعنشدن. این آقا تو این عبارتش یه نکته لطیف دیگه‌ای داره. که نکته استخابت این نیست نوبه توبه دادن این نیست اون نکته توبه دادن بیدیم حرام چیه حرام اگر تعلم و سهرگیم قابل توبه نیست لایو ستا خیلی توبه مانه پشیمانی که سفر کنم میگه لایوزی دیگه نه من قلی همین میگه تعلام از به نیده مگه از به نیده پشیمان هم بشه <تصفيق> خب میگرد ببینی از کردم ما هم چند بار گفتیم یکی ظاهر آید ها یه تعلمون من یکیش اون و ما یعلمون الناس ناسسته و ما یعلمان من احد حتی بول آن ما نه به کار برده شد یکی من تعلم بابم منسته کان آخر احلی برده نه تو در تو این خیلی ظریفه اگر این نقطه درست باشه اطلاعات ذهنی تو قابل تاثیر کاربرد حالا یعنی ما اطلاعات اولیه کنیم که حرام تو هم, هم در ولی یعنی دیگه دیگه چه چه نه, نه وقتی میگه وقتی میگه تعلم حرامه مخاطب دیگه حتی سر با از هم میشه اشاره داره چرا فرض که سر ذهنی است باید گفتم به هر واسطه تعلم با این و این این دیگه یاد نه کعل لو لیکن انگشون ایو مبارکه. تعلیم داره و تعلیم هر داره, داره. اینا آمدن گفتن از این آیه در میاد که اصلا سر یا خصوه داره که تعلوم شد حرام اگر تعلوم حرام شد و حدشم قردیم شد یه جای توبه نیست یعنی نیمونم نصفی خندی روشن که این در حیمت میخواد دیگه که این خارج میبینیم که بگیم تعلوم سر حرام یا عمل سر حرام اصلا اگر گفتیم عمل سر حرام توبه بروند یستقا اما اگه این تحلیم اون صورت ذهنی و چون ذهنی قابل توبه نیست و که میشه یو که میشه احتمال که به خاطر معنای این باشه یعنی به ازادی توبه نه هلان کردم از کردن خب دلگر از این میشه نه نقصه شدر توبیلی نقصه اوشه میگه مربوط سابجا سابجاها، جواتن اشکال بکنه اصلا جواتن رو نیکنه میشوند اگازیان رو در ایوها بکنه عباسه ایشونم میگه چرا سابجاهایی بکنه تعلوم سه اشکال چند نیگه تعلوم سه منم روحه حرام باشه عمله بسیر روحه خود آفیدنا ایمان روشتن سه حرام از تعلیم و تحلیمه ولی اینجا ما که اینجا خوندیم اینجا اینجوری بود خود در این حبارت برده که دو تحلیمه هزا و تعلیم و حرام لا نعلم و فی خلافم به معظمه و تحلیم خود ذهنی اون صورت ذهنیه اون صورت ذهنیه موضوع اثر شده اگر در نهایت و باشه بودن دانش است همون بودن تعلیم و تعلم حرام میشه عالم بودن حرام نمیشه یعنی به عبارتی میگن میخواد بگه در درباره سهرین ای اینقدر مسئله مهمه چون برای مسائل اینجوری فکر میکنی صورت ذهنی هم درست نکن. چون اگه درست کردی درست دنبالش میگم یعنی دنبالش من حرام. چون نه نه, نه من بیشتر تاکید این زرافت و ما این همه داییم به باید یه مزیدیم میخونیم خسته میکنیم برای این زرافت میگن حتی مثل ساگه ها واقعا هم ساگه های فقیل بزرگاری این طب بودن که ببینیم واقعا مثلا اینا توجه نگردن ایشون میاد اشکال میکنه میگه چرا گذید تعلم حرام؟ با عمل سه حرام زاهی واسی ناظر به عمل ما شده بیدید نه زاهاش مثلا من بابا منسه یعنی بریم اونوی یاد بگیریم این است ظاهر شیطوره ف یا تعلمون ف یا تعلمون من ما یو بین المره و زویه یا تعلمون نه ف بین المره و زویه تعلمون مطابع اون تعلمه یعنی تعلم و تعلم حل و حرام یعنی معلوم میشه کسی یاد گرفتر این کار حرامه دبر نه من نمی خواهد تحصیل بکنم مثلا بود اینی که صاحب جواهر هم یعنی علمای ما هم توضیح نشده که وقتی آمالا می گفتن تعلوم ببینید اونجا عبارت این منخونم برای دیگه اضاف فبکه آزا ببینید که ان تعلوم از سر و تعلیم روح حرام لا نعلم و فیه خلافا درست درست اصلا پیدا نداریم معنی معنی نه نه استاد خالص تعال شوف تاريخ مراد نیست که صورت که وظیفه تعلیم و تعلم نه حالا اون بحث دیگه ببینید اولش اینا که وظیفه که مرادش صورت ذهنی نه دقت می‌کنید بحث دیگه پس معلوم میشه ما نباید بگیم چرا اینا ها گفتن علو حرام نه به عمل معلوم میشه تأثیر داشته در پر این نقطه رو دفعه کنیم چرا <تصفح> <تصفح> اوه اوه اوه <تصفح> خیلی عجیبه یعنی من ما کاری به کفرم نداریم اصولا با حتی اگر در کارترم بگیم یستتا صاحب را بیستتا چرا چون اونی که از عدل در آوردی یا علمان یا تعلمون این حرامه اگر این حرام باشه این معنا قابل ثوبه نیست لا یذول به توبه. اما اگر بگیم عملو سهر سر واقعا میذول به توبه یه توبه گونه سهر انجام نده یذول به اگر عملو باشه این یذول به توبه اگر و سهر باشه،, باشه لا یذول به توبه یعنی میخوام بگم که معلوم میشه اگر این معنا درست باشه اگر این مرحله من یه بازی بازی میکنم شاید من بد تفضیله خیلی ایشون میگه وله انه در سهر معنم فی قلبه باید بگه علم فی لا یزولو به توبه فی نشده ما مهلم ی این چیزی که لا یزولو به اون علمیه محجده محجده؟ صورت علمیه نمیشه چه آمی؟ سلام با آقایم این خیلی سرکید کردم چون این بابی رو باز میکنه که کلمات فوقها رو دقت بیشتری بشه